برمومه پنجره های روبه محتاب رو میشنوید استاد فریدون, استاد فریدون جنیدی از شاهنامه میخوانند و داستانهای شاهنامه برای ما میخوانند و رمز باشایی میکنند و پیامک های زیاد شما خیلی زیاد شما که نظر خودتون رو در مورد این کاری که انجام شده در میدان فردوسی مشهد و بسیاری گفتیم زیب... من ندیدم البته یکی از زیباترین نقاشی ها از نقاشی هایی که از داستان های شاهنامه بوده این کارو چرا این کارو کردند و خواستید که کسی باید جوابگو باشه که انشاءالله جوابگو خواهند بود و این کار سرسامانی می‌گیره و این اتفاق نمیفته و دوباره اون نقاشی ها اب نداره باست هم اگر هلچی نبشه به نظر من لازمی که این وجود داشته باشه چون مردم شما خواستید با درود و سلامتی خدمت شما آیا ا یا خمانی همون هخامنش نیست اگر نیست دلیلهایتان ولیلتان را لطفا بفرمایید و پرسش دیگر آیا شهر سوخته شهر رستم نیست چون تعداد اسکلت مردمان بلند قامت و نیرومند پیدا شده خواستم دیدگاه شما را بدانم با سپاس امیر محمدیان از اهواز، درود بر امیر محمدیان با و اهواز، و دشتهای گرمت خوزستان. همای در حقیقت نمونه مادنی که یعنی دوران حکومت مادها بر ایران حقامنشیان در شاهنامه اروپاییان حقامنشی نام دادن وقتی که این سنگ نوشته ها رو خوندن که نجاد مثلا داویوش میرسه به چش پیش و این نام رو به نام حقامنشیان بر اونا در حقامنشیان به دادن اما در شاهنامه ما داراب و دارای داراییان نماد دو بخش حکومت هرخامنشیانی داراب کروش و کمبوژی و دارای دارایان نماد پادشاهی داریوش و فرزندان اونوز و پایان و اما خب تردید نداره که شهر سوخته در سیستان و رستم هم نماد نیروی سیستان که اینا به همدیگه ارتباط تدام کنه بله همینه بله سلام استاد جنیدی کاش نام شاهنامه نام ایران نامه بود با تشکر مرتضای شهریار شاد باشید در حقیقت همون ایران, ایران نام هم هست من نمیدونم که شما کتاب زندگی و ماجد آریاین رو خوندید یا نه اگر بخونید ببینید همونه نه, نه تنها ایران نام است بلکه در بخش های نقصدین جهان نام هست. یعنی چیزهایی در وقتی تاریخ جهان در شانه اومده که ما اونا رو از و دروخ خطاب کردن که اینها در هیچ تاریخی در جهان نیامده و فقط در شانه اومده. درود مردویش چه بود و چه افکاری داشت؟ سپاس دیاکو. درود بر دیاکوب مردویش پا... که ایرانی بود که دید با نمیتونه که با های عرب سر سازش پیدا کنه چون اونا تمام کارشون تظویر ریا و مکر بود و تصمیم گرفت که به هیچ وجماند ابو, م... ابو مسلم یا تاهر زولیمین یا دیگران نکنه و مثل یعقوب و لیس ایران نجات بده از چنگ عرب و موقعی که میخواست حرکت کنه در شهر سپاهان همزمان بود با جشن صده بزرگترین جشن صده رو برگزار کرد و آهنگ پایتخت خلفا رو داشت که متاسفانه همون شب در همام برهنه رو بودند و مزدوران و جاسوسان خلیفه اورو به رحنت بدون اصله کشتند و این آرزو او با خون خال کمبررا شد درود بر استاد عزیز فریدون جنیدی سوالی داشتم که هکیم فردوسی چند فرزند داشت آیا از فردوسی بزرگ نسلی باقی مانده و مشخص است با سپاس عدیه سباقی از تهران شاد باشید در اون تردیدی نیست که ما خبر داریم که از فردوسی یک پسر بود که اون پس 28 سال فاصله سنی با پدر داشت و در راه های پدر جانش پرواز کرد فیدوسی از اون یک پسر نام برده در افسده های شانامه که قضنبیان درست کردن از این دختر نام بردن که اون افسانه است و ندرسته بلیکی ممکن نیست که در اون بربونیاد همون افسانه نادرست هم نمیتونی، نمیتونیم قبول بکنیم که فیدوسی دختر داشت که میخواست سله بگیره و جهاز دختر سی سال طول میکیشه این دختر پیر میشه که این پیر این به جهاز دختر نیست چنین فردوسی اون چنان که خود گفته فقط یک پسر داشت قطعا نجاد فردوسی مانده خون در جان و رقای ایرانیان بر روان است. خواهشمندم استاد اون دو بیت که اول برنامه خوندن رو دوباره برامون بخونه کوروش از عراق شاد باشید چون این گفت حتما میخواید بنویسید من آرامتر میخونم چون این گفت روشن روان کسی که کوتاه گوید به معنی بسی هران کسی که مغزش بود پشتاب فراوان سخون باشد و دیر نه و استاد سلام استاد من جوان لور هستم میخواهم از آیوبرزن آیوبرزن شجاو بیشتر بدانم با تشکر رضا بیانوند از خورم آباد درود بر خورم آباد و درود بر لورستان البته جریان این پهلوان بزرگ ایرانی از دستان شاهنامه نیست اما خب من امیدارم در یکی از برنامه ها بتونیم که در باره او سخن بیشتر بکنیم و پرسیدن که درود بر استاد جنیدی معنی اسم ماندانا چیست با سپاس محبوبه از گوهردشت درود بر شما تردید نیست که بعضی از این نام ها مثلا فرض کن که مانی یعنی بماند ماندانا هم یک چنین معنی داره و در فرهنگ ایران بوده که اگر یکی دو تا بچه به دنیا می مردن یا به دنیا نایمده می مردن وقت در مادر برای او یه چنین که بماند بر پرسیدند درود بر شما معنی و ریشه کلمه مرجان چیست؟ نسیم از شادنوشی کرچ شاد باشید مرجان یه نام یک گیاه طرحیقت که جانور گیاه نماست در دریا و مطلقاً نام مرجان ما غیر از این دیگه ریشی میمتونیم برشیم مثل ماجن می‌شین یه نامه یا گل یه نام هست. بله. از دید دوستان حالا می‌پرسند که آیا پیامک درست اون کافی که ما می‌ذاریم درست هستش بر روی پیام؟ پیام، پیامک، پیامک چون پیام کوتاه ایب نداره. یکی از وجوهایی که انتخاب شده وسیل مردم ایران و درست هم هست. بله. و سوال کردن کرماشان درست است یا کرماشا کرماشان شان, شان پسند جایگاه هست که در کرماشان هست در کاشان هست در لوشان هست در خیلی از شهرهای دیگه هست به صورت پیشمند در شاندیز هست در شانگرما هست شان یعنی جایگاه کرماشان به تلفظ خود درست کرماشانی کرماشان با, با درود بر استاد جونی گرامی ا استاد،, استاد پیشتر گفته بودن پیدایش آتش در زمان هوشنگ نبوده اگر نبوده چرا در کتاب زروان این این آمده سوشیانات از من نگفتم که در زمان هوشنگ نبوده برعکس گفتم که افسانه‌نگاران شاهنامه یه داستان دروغ نادرست رو آوردن که یکی روز شاه جهان سوی کوه هم با چند تند هم گروه بعد سنگ و ورداشت سنگ به یک سنگی دیگه خورد از اون یک آتشی پدید اومد. این داستان اقصوده به شاهانام است. مهمترین کفتار در داستان حوشنگ همینه که فیضاستی میفرماد به سنگندر آتش از اون شد پدید که از در جهان یا کزان در جهان روشنی گسترید یعنی با کوشش هزاران ساله نیوکانون ما در دوران ما در سالاری چندان سنگ ها رو به هم زدن از اینا جرقه و اینها پدیدار شد تا بالاخره یکی از هزار از این جرقه‌ها روی پوده پوسیده چوب و چوب اینا آتش گرفت و آتش با کوشش نیوکانون ما به ویژه مادران ارجمند ما پدیدار شد نه اینکه اتفاقا یه سنگی رو بزنم به یه سنگ دیگه و آتش چنین چیزی نیست ما در دوران کودکی که از که داشتیم کسانی که هم من هستن میدونم که سنگ رو بر به خصوص زیر پله که خیلی تاریک بودیم دو تا سنگ رو با هم می زدیم چراش میید وفت چرا قاب ما شادمان بودیم شبا با هم بازی می کردیم تا 200 تا 500 تا هزار تا اگر بپره روی یه حتی روی چوب بپره نمی سوزن اونو. خیلی, خیلی این کار کوشش پیدا به ویژه باید روی یک پوست پوسیله درخت باشه بخوره که این آتش بگیره نه اینکه در اون داستان افسوده خوشنگ سنگ رو بر زرب میخواست بزنه به اون مرد خرد یک جنگ دیگه آتش از اون پدید شد نه در حقیقت کوشش هزاران ساله نیاکان ما رو به ویژه مادران گرامی ما رو در یک داستان افسوده خلاصه کردم مثلا بفرمایید علت شروع قصه های ایرانی با عبارته یکی بود یکی نبود چیست و این یکی نبود به چه معنی است؟ واسه قاس رودابه از قذبین درود بر رودابه و قذبین کاسپین شهر کابوشا روان شد صبحی محتدی بود که برای فرزندان ایران خداستان میگفت و دیگه شما بیاد ندارید بسیار مرد پروتن افتاده و بسیار قدل گسترده با مهل فراوان و یه برنامه بسیار خوبی رو اداره میکرد روزای جمعه برای بچه ها او در اونجا من روان شاد که گفت و من خودم شنونده داستان های صبحی بودم بهترین تحویل رو کرد گفت یک به زبان خراسانی و یکی یکه بو یکه نبو یعنی کسی یک نفر بود و کسی نبود یعنی خدا وقتی که خدا بود و هنوز آفرینش آغاز نشده بود یکی نبود یعنی کسی نبود این اگه به زبان خورستانی بگیم معنیش مفهوم پیدا میکنه حالا همین را اگه به زبان امروز رایستران بگیم بگیم یکی بود یکی نبود یعنی کسی نبود ولی خود در زبان تران نمیگن یکی میگن کسی نبود یکی بود یکه نبود روان صفی موتدی شد شاد باشده بودش با درود آیا سکونتگاه منوچر نخستین انسان کندوان است نخواستیم انسان منوچه نیست منوچه نجاد منوشه که هم از متون پهلوی برمیاد هم از عوستا و هم از شاهنامه چنین نشان داده میشه که کوهستان پتیش خواهگر که در حقیقت اطرافی یا منوشان که اطراف گودماند رو گرفته پایگاه منوچه یعنی نجاد منوش بوده که در داستان آرشی که همام گیر میبینیم آرش رفت بالای دمواند و تیر رو پرتاب کرد و در داستانشان رو میبینیم که این ایرخ یعنی آرش منوچه که از دمواند و از, با از آمود که پایتخش نزدیک دماوند هست همده رو شروع کنه برای بیرون راندن تورانیان استاد چقدر حضور ذهن دارند به همه سوالات پاسخ میدهند؟ سپاسگزاریم از شما استاد سپاسگزار گزار از یزدان که به من این امکان رو داد. من سوء استفاده میکنم تو تو پایگاه کار می‌کنم نمی‌دونم چطور نفسیتو مدیریت کنم. مثلا من, من نفسام با نفس جهانان ایران گیرمه. و نداره. سپاس من یک روز در کرمان هشت ساعت سخن گفتم. ماشاءالله. با با م... م... م... دارم. یعنی هر آموزش زبان فهلوی بود در کرمان گوش می‌بودم برای اه... فرزندان زرتوشیان کرما و روز آخر من از ساعت تا شیش درست دادم و چون دیگه قرار بود فردا برگردم سه اران کم کم پدر و مادر خواهر بردارم برداران اومدن تو همون سالن نشستن شش ساعتم اونا از من پرسش کردن در زمینه های مختلف تاریخ و فرهنگ ایران که من پاسخ دادم بازم ابراز مندگی نکردم ولی آقای دکتر بخشوری که رئیس انجامن اون زمان بود گفت که به مردم گفت بین صفای فردا صبح زود بخواد بره که دست بره دیگه و مردم دیگه محبل کردن نپرسیدن ولی من ریکورد دارم هشت ساعت صحبت کردم مانده نشدن مانده نباشید شاد باشید خب میفرموندید ادامه داستان بدون مند شاه جهان در شگفت از آن کودک اندازه ها برگرفت اندازه برگرفت یعنی سنجید کار جهان رو عادت این هم باز در کارنامه شیر با با ولی ما در نمونه های دیگه داریم که در جنگ های نخستی نیکردشیر میکرد شاپور یکی از سرداران سفا خودش بوده نه اینکه که بدون یا بیاد و کارنامه اینطور در حقیقت نشان دادن که شاپور پنجا درستد از ازردوانه چون ایرانیان تا پایان زندگی ازرشین ها بایش مخالف بودن در خود کانا آمده که مرتبا یک شهر رو آرام میکرد شهر دیگه برمی انگیخت و در, در همین شاهنام هم در مطل که در درسته فضوسیم بوده به اینجا برخورد خواهیم کرد ایرانیان مخالف بودند و مخالفت میکردند پس در این داستان اینطور اگر بیاد که شاپور پنجار درصدش اشکونی هست این خودش موجب میشه که همراه بشن ایرانیان باید از آن پس چنین گفت با خدای که ای کتخدای یعنی وزیر که ای مرد روشنده رو پاک رای بسی رنج برداشتی زین سخون نمانم که رنج تو گردت که اون نمانم یعنی نگذارم کنون پسر گیر پسرگیر همسالوی به بالا و دوش و برویال اوی همه جامعه پوشیده با او به هم یعنی همه های یکسان باشه نباید که چیزی باود بیش و کم همه کودکان را به میدان فرست به بازی گوی و به چوگان فرست چون یک دشت کودک بود با خوب چهر به پیچت به فرزند جانم به مهر یعنی فرزند خودم رو در میان اون صد کودک تشخیص خواهم داد از روی مهر پدری بدان راستی دل گبایی دهد مرا با پسر آشنایی دهد. بیامد به شبگیر دستور شاه گوسی کرد کودک به میدان سپاه به یک جامعه و چهر و بالا یکی که پیدا نبود این از آن اندکی نگه کرد و چون کودکان را بدید یکی باد سرد از جگر برکشید به انگشت بنمود واکت خدای که آمد یکی اردشیری به جایی یعنی پسر که شکل من هست به دو راه بر گفت که پادشا شد دلت به فرزند خود بر گوا خودت گواهی دادی که این فرزندت. <تصفيق> یکی پنده گفت شاهر و شیر که رو گوی ایشان به چوگان بگیر همی باش با کودکان تازه روی به چوگان به پیش من انداز گوی از آن کودکان تا که آید دلیر؟ میان سواران به کردار شعر بابد بیگومان پاک فرزند من ز تخم من و پاک پیوند من بفرمان بشد بنده شهریار بزد گوی افکن پیش سوار دوان کودکان از پی او چو تیر چو گشتن نزدیک با اردشیر بماندند ناکام بر جای خیشمه ترسیدند و ایستادند بیامد همان گاه شاپور پیش زد پیش پدر گوی بر بود و برد چج دور مرکودکان را ساپرد. سه شادی چنان شد دل اردشیر که گردد جوان مردم گشت پیر. شاهشهوز اون پس گرفتش به بر همین آفرین خان بر دادگر همین بر خدا بند. آفرین یکی واژه‌ای که پیشوند آ داره که در حقیقت تایید میکنه هر چیزی رو مثل متن در پهلوی و آمتن. این ریشهش عوستایی بوده فرین فرین در عوستایی یعنی از ریشه فری عوستایی گرفته شده یعنی عشق، آفرین یعنی عشق برتر عشق بالاتر آفرین بر تو یعنی عشق و من بر تو فوزونه بگیره برتر و این واژه در واژه آفریدگار هست یعنی خداوند یعنی خداوند با مهر و عشق جهان رو آفریده. و در واجه آفریدگان هم هست. یعنی در آفریده. یعنی او هم عشق نسبت به خداوند داره. یعنی در حقیقت بین آفریدگار و آفریده اون چیزی که یگانه هست در هر دو هست همون فری هست. یعنی عشق. یعنی جریان عشق بین خداوند و آفریدگان و برعکس از توی خدا... آفریدگان با خداوند. این است که شما در ادبیات عرفانی پس اسلام این همه درباره عشق و عاشق و معشوق شعر می‌بینید همه بازگشت میکنه به این واجه آف آفریدگار و آفریده از این واجه یک واژه دیگه هم پدید اومده با پیشبند نی پیشبند نی اشاره به پایین داره وقتی که در سر افعال میاد مثلا نیشستن میبینید نیشستن به پایین نیشستنه نیهوفتن نیهاتن اینا همه حرکت به طرف پایین داره با این پیشوند نی که حرکت به پایین رو نشون میده بایده نیفرین درست شده نیفرین یعنی عشق تو بر زمین کوبی دو باد تو پایین بود، عشق تو بر زمین. بنابراین نیفرین هم از همون رشه آفرین کرده شده و منطقه با این پیشوند ها معنیش با هم دیگه فرم میکنم. اینجا که آفرین گفته که همین آفرین خوان برداد مفهومش اینه. سر و چشم رویش بپوسید و گفت که چون این چه گفتی نشه باید نهفت. به دل هرگزین یاد نگذاشتم یعنی نگدهراندم. که شاپور را کشته پنداشتم چون یزدان از دان مرا شهر یاوری فزود ز من در جهان یادگاری فزود بفرمود تا دختر اردبان به ایوان شود شاد و روشن روان به کرده گناه ورا ز زنگار بزدود ماه ورا یعنی صورت رو بیاورد فرهنگیان روز شهر زود دود فر ز فرزانگی داشت بر نوشتش نوشتن بیا پهلوی نشست سرفرازی و خسروی همان جنگ را گرد کرده انان ز بالا به دشمن نمودن سنان یعنی از روی اسب زمی خوردن و بخشش و کار بزم سپه جستن و کوشش و کار رزم گذاریم از شما وظیفه ماست، وظیفه رادیو فرهنگ هست و وظیفه و مسئولیت سنگین و استاد فریدون جنیدی هست که این مطلب رو با حساسیت بسیار عنوان کردن و شما هم در پرامکاتون آوردید و بسیاری از دوستان گفتن این کار درستی نیست حتما باید این ترمین بشه استاد جنیدی در پرامکاتون دارم بینم. بسیار کار ببیه یه نیچی همه جایی جایی نقشی ها رو میذارن باشه درست میکنن این نقش. مفهوم اون ساخنیست از فیدوسی که من خوندم چون پیچان شبد مرد رو روزگار همه آن کند کشنگ راید بکر ما به فیدوسی و به شانامه چنان که باید نمک با درود و مهر بسیار به فیشگاه پیامه بر خیلط استاد جنهدی استاد از من مهر بزیده و درباره ان دشت قفچاق قفچاق و ایرانویچ استاد فرمودن که انگره مینو بد نیست سپاس گذارم همایون همای همای چهرزاد از کوه دشت بخ بح نامی انگ در اندیشه ایران و باستان خداوند جهان رو با دو بنیاد آفریدو اداره کرده به ادامه میده یکی سپینده سپنت مائنیو در अवेستا که در فارسی شو سپنت مینوک در فارسی شو سپنت مینو, سپنت مینو، یعنی گستراننده و یکی انگرا مائنیو یعنی آه، آه، مینوی دقیقت حقیقت از میان برنده تباه کننده خب این دو نیرو با هم دیگه کارساز هستند یعنی با سپنت مینیو مرتبا جهان افسوده میشه با انگرا مینیو اون چیزی که افز شده کاسته میشه ما حتی در تن خودمون هم میبینیم این رو یعنی اگر مثلا سپنت معنیی و ناخن های ما رو درست کرد ما بهقچیر رو میداریم و این کوتاه میکنیم این کار کاره یعنی در حقت ادامه آافژینش خود ناخون برای آینده. برا و در جانورانی که ناخون دارن این کار با حرکتی که میکنن با زمین میکنن یا به درخت می مالند این, این کار رو انجام میدن. وقتی خود انسان این ار مثلا فرض کنیم که سلولهای بدن میمیرن ما اینا رو با کیسه از بدن خودمون میزداییم این کار کار بدی نیست منتها بعدها در اندیشه نوزدتوسی و تبدیل شد به اهریمن و وقت دیگه یک چهره خیلی پلیدی ازش ساخته شد که میبینیم الان میشناسیم در حقیقت در اون اندیچه باستانی که در گاتها اومده سپنت معینیو و انگرم معینیو هر دو نیرو با هم دیگه در کار روایی جهان کوشش میکنه من حواسم نبود خواستم میگم ادامه بدید استاد جنیدی. ادامه داستان شاه نامر داشته باشیم دیدم 2243 دقیقه است اگر اجازه بدید چون تلفن ها آماده پخش بشه پس می تا به کجا رسیدیم ما استاد که دیگه... آه... پیش بینی کیل هندی که بعد از خواهد اومد بله پس بل. این برای بمانه داره هفته آید به امید خدا و سوال اینم آه... خوبه که گفتن که درود بر شما تست را با جو درست میکنن رامین از ممسنی آفرین ب... برممسنی ممسنی آخه اون کسی ام که مینام که مادر بوسه درست کرد از با رحمتون خیلی خوب من یاد از یاد برده یا ما در بزرگیم اینو با گندم درست کردیم به خوب شد که اینو فرمودیم بله بسم الله الرحمن الرحیم با درود و صدق معرض دوستاد عزیز دکتر جانیدی و مجری محترم اولین که ما در فراخشر چار محال تایفه داریم به نام تایفه شاهنامه که علاقه خاصی به شاهنامه دارند. حتی بیشتر از 90 درصد در اصامی آنها از شاهنامه گرفته شد و نسل قدیمتر برنامه شاهنامه خانی داشتن و بعضی آنها با صدای خوشی هم شاهنامه خانی میکرد دوم یادی از مرحوم سید یحیا محبت قهر فراخی بشود که. نقال برجسی استان و کشور بودند چند سال پیدرپی در کشور مقام اول را کسب میکردن و همه هفته در انجمن شهر آصف فرخشهر برنامه نقالی داشتند. یادش گرامی باد سید حسین صالحی قرفرخ هستم از چهارمهال و وقتیار شاد باشید که به ما آگاهی دادید در این زمینه شانامخانی حبت شانامخانی تا یک نصف پیش در همه ایران بود اما بختیاریان به ویژه و لوران لکا اخیره من در لک هم برنامه های هست که یکی از فرزندان بونیاد اونها رو میخواد زبط بکنه و یاد کردید از این نقال بزرگ روانش شد. با درود بیتی که بی دو بیت شیری که استاد خواندند از رضی قومی است کدوم <تصفيق> دو همون که شما در مورد گفتین گفتیم نمیدونم از, از چون تیغ بله خب سپاس گذارم رضی قومی بله خوب شد که بله بله بله من این رو بریافتم بله هستاد فرزان فریدون جانیدی هستاد عزیز همان گونه که ما کتبانو بانو کت یعنی خانه بانو یعنی نور خانه و کت خدا خداوند خانه گفته میشه میخواستم استاد توضیح بدم ناخدا علت چی سر کشتیبانی یا کشتیرانی اون کلمه رو ناخدا میگویم میخواستم استاد توضیح بدم شاد باشید دیگران رو هم شاد کنید با که هستم از اسلام درود بر شما آقای باشوکی اون ناو خدا بوده یعنی کسی که کارش اداره ناو و کشتی بوده ناو از زمانهای باستان به معنی کشتی دجوان بوده و کشتیم در ایران ساخته شده نخستین این کشتی ها از ایران به جاهای مختلف رفته چند هفته اخیرشون بود که فرموده بودن که معظم به حضورتون داریوش بزرگ به خاطر حالا دیکتاتوری که داشتن باعث حمله اسکندر شدن به ایران و ازن حضورتون و از بین رفتن ایران و به دست یونانیا مثلا از آقای توکته بپرسم که این منظورشون از داریوش بزرگ داریوش سومه چون اگه منظورشون ایشون باشه که دیگه داریوش بزرگ نیست داریوش بزرگ بعد از کوروش اگه فکر میکنم اون باشن و هرزن به حضورتون بعدش خشایاره و بعدش اردشی را یکمه و بعدش داریوش سومه. حالا ما خودتا بشه راجبه این دوباره توضیح لطف کنن بدن درود بر شما داریوشیان در شانامه تحت عنوان دارای دارایان ازشون نام برده شده از داریوش اول دربر میگه تا داریوش سوم. کودتای او و دیکتاتور او و کشتار او البته من اداره کشور رو قدرت او رو نحف نمیکنم ولی او با با این کودتا و با این کشتارهای عجیب و شیفت آمد و دل ایرانیان رو شکست و در حقیقت پشت و پناه خودش رو که ملت ایران باشه از دست داد و در پایان میبینیم که ایران بر دست اسکندر مقدونی در هنگام داریوشتبوم از دسته مقصود خود داریوشیانه یعنی مقصود است که به ملت پشت میکنن و گمان دارن که با نیروی شمشیر میتونن بر جهان و روان ملتها حکم رانند با مر میتوان کشور رو اداره کرد و اون وقت هم همواره مردم پشتیبان چنین پادشاهی هستند روزبه به چه است یعنی روز یعنی روزش خوب باشه هیتا به چه معناست؟ انا هیتا. اناهیتا انا هیتا, هیتا در زبان عبستایی یعنی بسته بعد ما حتی هیتاست بداریم هیتاس یعنی عصف بسته و این هیتا با آ تایید میشه همطور گفتم در این برنامه آ هیتا یعنی بسته بعد با میانوند نون و علف اناهیتا میشه یعنی باز یعنی روان که خاصیت رودهای روان هست اناهیتا یعنی رود روان ده. درود بر شما اگر می شود در باره زم و بخش نخستان یعنی زم سخند بگویی چاگردتان از سهران درود بر شما زم به زبان عوضی زم یعنی زمستان یعنی سرما که برپردش دم در واجه دمیشتان باقی موند. ولی در خود متون وسیع زمم اومده و می‌بینید که زم حریزم درست درست فست سرمایه سخت زمستون سلام وقت شما بخیر آفرین به جناب دکتر، من میکرستم فقط تحال کنم واجه کلمه خدا با خدا یا خداوند اینا با هم دیگه ارتباطی دارن معنی به چه فیرته خدا خدا یا خود یا, خود یا خداوند یا با آفریدگار و پروردگارم هم همخانه یا هممعنی هستن یا نه ممنون میشم آخونی هم از من درود بر شما آخوندهی و درود بر اون امواج آبی آرام دریاه فارس این واژه در زبان فارسی که امروز به منی خداوند خونده میشه پیشتر نبوده خواتهایی بوده در زبان پرلوین پادشاه یا دارنده که در واژه کت خدا ما میبینیم کت خدا هم به منی دارنده خانه است هم حتی کسی که داماد بشه بهش میگن کت خدا شد هم به منی وزیر هم منی جهان کت خدا یعنی پادشاه جهان یعنی پادشاه ایران بوده. خوات های در زب... حتی در زبان و فارسی هم به منی صاحب هست یکی بر سر شاخ بون می برید خداوند بستان گذر کرد و دید او که این شخص بد میکند نه بر من که برخش شخص خواهد میکند یعنی سر شاخه نشسته پایش واخرات داره می بره به زودی خواهد افتاد و خودش دست پاش خواهد چی خداوند ب... گروهی خداونده چارپای یعنی صاحب چارپای خداوند کشت و سرایی یعنی که کشاورز بودن در شانومه و در متن فارسی بسیار خوطای به معنی صاحب اومده که البته خوطای بزرگ همه جهان خداوند جهان آفره میم پرسیدن فرهنگ یعنی چه؟ واژه فرهنگ هیختن در زبان فارسی یعنی بیرون کشیدن و آهیختن آه یعنی با پیشوند آ تایید میشه یعنی مثل شمشی رو آهیختن آه اما با پیشوند فره حرکت به آینده داره یعنی یه چیزی رو از یک طرف فشار بودین از طرف دیگر یه چیز بیاد بیرون مثل مثلا خمیردندون از این طرف فشار از اون بر بیاد بیرون بنابراین این هیختن که شد هنجیدن و بعد هنجیدن شد فرهنجیدن و بعد شد فرهنگ از اینجا معنی میگیره یعنی اساره جان و روان و اندیشه های یک ملت در توی ه... طول هزارها که بر اثر فشار جریان روزگار و جهان اینها از انسوب بیرون اومده یعنی رود روان اندیشه یک ملتی که بر اثر فشار روزگاران پدیدار شده و این واژه با این معنی شگفت فقط در زبان فارسی وجود داره اگر شما بریم بگیم کالچر انگلیسی یا کلتور فرانسای اینا یعنی چی نگاه کنید ببینید هیچ چنین چیزی رو در بر نمیگیره چه اسم قشنگی داره رادیو فرهنگ به نام خدا من هفت سال دارم بابام وسایل برداشت باستانی درست کرده کلمه های آب آباد باد داد را به پهلری می نمیسم مچکرم استاد و بابا بزرگ مهربان من عباس بستور از در ایران فارس شاد باشید خوب شد که در عرض این یه هفته گفتی که چشیز داره حتما باد رو بینیسی باید بینیسین وات و آباد رو بینیسین آپات آقای زریر معلم به حموزگار به پهلوی به پهلوی آپات و وات نه سفاس گذارم مستد جمعیدی زمان برنامه تمام شد شما باشید. اما کنید. امامان، پیغامی از طرف من و تلفن ها من ببخشید. بس من از من من از جناب رو... مند... ها... با مهر این پیام رو می دیدن، اون تلفن رو می زنم و متاسفانه پاسخش نمی‌شدن. شما مهر و آفرین منو. آفرین. یعنی اون چیزی که با عشق از من به پای شما ریخته میشه بپذیرید. سپاس گزارم از شما. شب تا شما خوش. تهیه کننده برنامه آقای صداقتگوی عزیز صدابرداران خانوم هورفر و آقای هیدری استباتات آقایان تگنیزاده و آقای باقیدی همه آقایان میرواسته و آقای ابراهیمی منم همیز رضا هدایتی را سپاس کن ایران آفرین بر شما